بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأقضية والشهادات كتاب قذابتها وقواهيها أقضية جم قضاء هست قذابت کردن شهادت جم شهادت هست قواهي دادن ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه خمسة خصلة، وجايز نسكي تحويل بكرة قزارة قزواترة، مجر كسيك تكمل شود درو، بنزه صفة بنزه خصلة ويجي، بس يقاضي پانزه خسلت داشته باش یک الاسلامو اسلام مسلمان باشد دو والبلوغو والاقلو دو بالغ بودن و عاقل بودن سه والحریتو آزاد بودن بردن بودن تار والذکوریتو مرد بودن زن بودن بالي والعدالة عادل بدن فصغنا بشد عادل بشد شش ومعرفة أحك ومعرفة أحكام الكتاب والسنة دي. شناخت أحكامات قرآن سنت هفت ومعرفة الإجماع شناخت اجماع چه جاهای امت امت اسلام اجماع دارند و معرفت الاختلاف هشت شناخت اختلاف چه جاهای با هم دیگه اختلاف دارند و بین اینا در فتوه خیلی تأثیر داره هشت و معرفت طرق الاجتهاد و شناخت راه‌های های اجتهاد اصول فقه بلد باش برخلاف خیلی از سطحی هایی که گاهان شنیده میشه ازشون اصول فقه نیاز نیست. چرا؟ نیاز هست و از ضروریات هست. شناخته طرق اشتادمون اصول فقه. و معرفته طرفن من لسان العرب. و شناخت قسمتی از زبان عرب. به زبان عرب آگاهی داشته باشه. اگرچه طبح این لفت این آگاهی داشته باشه. طبح شرط نیست. به علوم پایه عربی به صرف و نهب و لغات آشنایی داشته باشد اینکه تخصص تخصص داشته باشد این شرط نیست یازده و معرفت و تفسیر کتاب الله تعالی شناخته تفسیر کتاب الله اینا پنج چیز شدند ها شناخت احکامات کتاب و سنت شناخت اجماع و شناخت اختلاف سه شناخت راه‌های اجتهاد چار شناخت زبان عرب پنج معرفت تفسیر شناخت تفسیر کتاب الله این 5 تا شرط برای اون قاضی هست که مجتهد مطلقی با اجتهاد خودش قضاوت بکنه اما قاضی که مجتهد هست مجتهد مقید مذهب امامی خاص است مثل مذهب امام شافی اینا در شرط نیست کافیه که اصول و فروع مذهب رو بلد باشد کافیه که اصول و فروع مذهب رو بلد باشد با نصوص امامش در مسائل قضاوت میکنه اون مسائل که منصوص ن... اه... علیها هستن این از طرف امامش مجتهد مطلقش نس وجود داره و اما اون مسائل که منصوص علیها ها نیستن نس برشون وجود ندارد اجتهاد میکند طبق قواعد امامش اما این پنج چیز برای مجتهد فیلم شرط نیستند بال. و این یکون سمیعن شرط بعدی قاضی اینه که شنوا باشد و این یکون بصیرن خسلت بعدیش است که بصیر بینا باشد و این یکون کاتبن کاتب باشد البته در شروعات میارند که قول معتمد در مذهب این است که کاتب بودن شرط نیست زهن یکون مستقرا مستقر باشد صحیح نظر صحیح الفکر باشد پس صحیح نیست که متولی امر قضاوت باشه یک انسان غافل نظر و فکرش مشکل دارد اختلال فکری دارد بله این پونزه تا خصلت بودند که یا پونزه تا مسئله بودند که ضروری بودند برای قاضی. بله. بدون این خسلت ها قاضی بودند جایز نبود. پس این از شرطهای قضاوت هستند طرف این پانزده خصلت رو داشته باشد تا قضاوت کند البته با تفصیلاتی که بیان شد مخصوصا اون پنج شرطی که در قاضی مجتهد مطلق شرط بودند اونا دیگه در قاضی مجتهد فیلمزهب شرط نبودند شرط بود که اصول فرو فروع مذهب رو بلد می بود. خب او ان یجلس فی وسط البلد فی موضع بارز للناس ولا حاجب له ولا یقعد للقضاء في المسجد. میگه مستحب است که قاضی در وسط شهر بشیند. ادالت برقرار بشه همه در دسترسی به او یکسان باشند در جایی آشکار برای مردم و نگهبانی یا حاجیبی دربانی کسی که مانع مردم از رسیدن به او شوند نداشته باشد و برای قضاوت در مسجد نشینند، فرماید که مستحب همین است که در مسجد قضاوت نکنند و یوسف بین الخصمه فی ثلاثتی اشیاء قاضی بین دو طرف درگیر در سه چیز مساواتو برقرار میکنه فی المجلس در مجلس نشستن ها؟ اگر یکی رو راستش میشونه دیگر دیگری رو چپش اما اینکه یکی رو نزدیک خود بنشاند دیگری را دور نه یعنی اینقدر امر قضاوت مهم هست که حتی در مجلس عدالت رو برقرار کند و لفظی ادالت کند بین اندو در سخن گفتن در کلام و لحوی در نگاه کردن به اندو تا با. در همه این چیزای ریز سمواخن طبقه هاي بصور كوار خب بس لاحظ همون هست لفظمون يجوز ان يقبل الهديه من اهل عمله وجائز نیست که قبول کنه هدیه را اهل عملش از اهل محل ولایتش اونجا که کار میکند هدیه رو قبول نکند آثار منفی در روی قاضی در قضاوتش در شروعات میارن میگه قول معتمد یعنی راجه در مذهبین است برای قاضی حلال هست قبول کردن هدیه زمانی که هدیه دهنده قبل از اینکه که قاضی, قاضی بشبه او هدیه داده و خصومتی برای او هم نباشد برای اون شخصی که هدیه میدهد و یجتنب القضاء فی اشارتی مواضع و پرهیز میکند از قضاوت در جا در 10 جایگاه موزع از اجت قضاوت اجتناب کند یک اندل قضب هنگام خشم دو ولجوع هنگام گشنگی سه ولعطش هنگام تشنگی جهار و شدت شدت شهوت شهوت که داشته باشد این موقع قضاوت نکنند. والحزن و البته مفرد والفرح المفرط، شادی مفرد بسیار زیاد وعند المرض هنگام مریض بودن و الاخبثین و هنگام فشاره. مدفوعة شاش، وعند النعاس هنجمي غلابة شرد، آه خابشة مدي شديدا، ده شدة الحر والبرد وهنجمي كه. گرما یا سردش، سردی شدید هستند. خلاصه اون چیزهایی که در روحیه انسان تأثیر دارند، در حالات انسان تأثیر دارند، سبب میشند که در فتواش در قضاوتش تأثیر منفی داشته باشند، هنگام اون حالات قضاوت نکند. ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة والسؤال نمي كناد مدعى عليه را مدر بادز فارغ شداني از أز بعد باد زنكي مدعي كاملن أز شد از مدعى عليه سؤال نمي كنت. ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي والسوقان دنامي مدعا علیه را مگر بعد از سؤال کردن مدعی مگر بعد از سؤال مدعی مگر بعد از طلب کردن مدعی سوگند دادن آن را مگر بعد اینکه مدعی طلب کنه که اونو سوگند بده این مدعی بخواد فس اوگان نمیدهد مدعا علیه را مگر بعد سوال مدعی. بله بعد استلب کردن مدعی تحلیف را. ولا یلقن خصما حجتا و تلقن نمی کند از طرف را حجتی بله دیگه اگر اینا رو حجتی یاد بده بر الی هم دیگر این ظلم در قضاوت است ولا لا كلاما کلاما و سخنی به او نمی ولا و به يتعنت بشهداء و بسختی نمیاندازد شاهدان را و شاهدان را در مشقت نمیاندازد قاضی آن اینکه به چرا شهادت دادید خب ولا يقبلوا الشهادت الا ممن ثبت عدالته و قبول نمیکند گواهی را مدر از کسی که عدالتش ثابت باشد مدر از عادل ولا یقبل شهادة عدو على عدوه وقبول لميكند گواهی دادن دشمن را بر دشمنش دشمنی بر دشمنش گواهی قبول نمیکنه ولا شهادت والد لولده وقبول نمیکند گواهی دادن پدر را فرزندش ولا ولد لوالده همچنین قبول نمیکند گواهی دادن فرزند رو به پدرش ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادتي شاهدين يشهدان بما فيه وقبول كارده نمي كتاب قاضي برا القاضية ديگر در أحكام مگر بعدس قواهدادن دو قواه كالشهادت بدهان بعنش كدرون كتاب است یعنی جایز نیست که این قاضی عمل کند به حکمی که قاضی دیگر نمشد من مانند این که براندش اینجا بوده بعدا رفته جای دیگه انتقال شده خب اون قاضی بعدی میگه عمل نمیکنه به قضاوت قاضی اول مگر با شهادت دادن دو نفر که گواهی بدن با این قضاوتی که اون قاضی قبلی داده تو این نامه گواهیش فلان قاضی هست بله یعنی دوتا نفر شهادت بدهند که این گواهی مال اون قاضی هست یه موقعی فریب نخورد کسی دیگر قضاوت رو ننوشته باشد بعدن بیان این قاضی رو فریب بدند که اینو قاضی قبلی پرونده نوشته نه خب البته این برای قدیم ها بود الان دیگه نو خیلی از چیزهای قزات دیگه تغییر کرده دنیا جدید است و بحث مراسلات امروزی و مرتبط بودن قضات با هم دیگه رو آخر احکام دی فصل احکام القسمتی فصل بعدی در رابطه با احکامات تقسیم کردن هست یعنی حسه های و نصیبه های رو از هم جدا کردن در اون چیزایی که با هم شریک بودند بله. دو تا فرد در یک زمین شریک بودند الان میخواد تقسیم بشه اینو میگن. قسمت. احکام و قسمت احکام تقسیم کردن نیازمند هست تقسیم کننده به هفت شرط اونی که جدا می کند نصیبها رو از هم دیگر سهم افراد رو از هم دیگر می به هفت شرط نیازمند هست تقسيم كنان القاسم. يك الاسلام مسلمان بودن. دو والبلوغ بالغ بودن. سي والاقل بودن. چار والحرية آزاد بودن. پنج والذكورة مرد بودن. شش والعدالة عادل بودن. هفت والحساب حساب دان السن. مقدار اشيار بشنا سن. و فإن الشريكان بمن يقسموا بينهما أجر راضي بودن دوتا شريك بكسين كي تخسيم كندون حسهارو بين عندو نفر لم يفتقر إلى ذلك إنجا ديك نيازي بإن مسائل بإن شرائط نيست خدفن يتيرو انتخاب کردند خلاص نیاز بین شروط نیست و انکانه في القسمت تقویم، اما اگر در تقسیم کردن قیمت گزاری بود یعنی اون مالی قرار بود تقسیمش بکنه نیاز بود که قیمتش رو مشخص بکنه لمی اقتصرفیه علا اقل من اثنین اینجا اکتفاق نمیشه در این تقسیم کردن بر کمتر از دو نفر پس در قیمت گذاری کافی نمیشه به قیمت گذاری یک تقسیم کننده دو نفر نیاز هست باید دو تقسیم کننده باشند خب اولا من خیلی مختصر اشاره کنم که تقسیم کردن بر سنوی قسمت الافراز قسمت الرد قسمت تعدیل در افراز قیمت گذاری نیست یعنی مثلا زیاد زمینی هست نصف شمال این شریک نصف شمال اون اللحاظ قیمت و اللحاظ اندازه فرقی ندارند هر دو نصف خب نصف این میبره نصف اون اینجا دیگه یه نفر تقسیم کننده کافیه اما در تعدیل و در رد نه شما ببینی که مثلا یک سوام زمین ارزشش به اندازه دو سوام دیگر زمینه اللحاظ قیمتی البته اللحاظ صورت نه اللحاظ قیمت این در ر... ت... تعدیل بود اما در رد هم دو قسمت زمین مثل همان، منطقه یک قسمتش فرزن چاهی هست اینجا هم در این دو صورت یعنی در قسمت تعدیل و قسمت رد نیاز به میگه دو تا قاسم هست دو تا شخص تقسیم کننده زیرا دو نفر با هم شدی کرد فرزن یک سروم زمین قیمتش اینقدر بالا اون آباد هست که از دو سی باقی مانده قیمتش با دو, با دو باقی مانده قیمتش برابری میکنه اون یک سی بله، اونجا طبق قیمت دیگه تقسیم میشه. یکی میدن به یکی یعنی یک سی اونی که ارزشش بالاه قیمتش به اندازه دو سی هست، اون دو سی رو میدن به پس اگر در قسمت در تقسیم نیاز به مشخص کردن قیمت اون مالک تقسیم میشه بود اکتفا نمیشه بر کمتر از دو نفر و دعا احد شریکین شریکه الى قسمتی مالات ضرر رفیح لازم الاخر اجابته و زمانی که طلب کرد یکی از دو شریک شریک دیگرش را به تقسیم کردن آنچه که نبود در اون تقسیم زرری بر طلب کننده بر شریک طلب کننده برای شریک طلب کننده زرری نبود و خواست که مالشون تقسیم بشه لازم الاخر اجابتو لازمه بر دیگری که باید قبول بکنه مثالش اینه زمانی که یکی از دو شریک، یکی از دو شریک یک دهم خونه رو داشته باشه که این هم صلاحیت زندگی رو زندگی رو نداشته باشه سکونتو و دیگری باقیش رو داشته باشه یعنی یک دهمش ده ماله این باشه نه دهمش ده ماله دیگری زمانی که طلب کرد اونی که نه دهم ده زمین داره تقسیم کردن و خب، اینجا اونی که یک دهم ده داره اجبار میشه که این بپسیره تقسیم کردن و اگر چه که علیه ضرر هست برخلاف زمانی که صاحب یک دهم ده طلب کرد اگر صاحب یک دهم ده طلب کرد که زمین تقسیم بشه خونه تقسیم بشه اون دیگری اینجا مجبور نمیشه که قبول بکنه تقسیم کردن رو پس این جمله رو بر دیگر میخونم زمانی که طلب کردی که از دو شریک، شریک دیگرش را به تقسیم کردن آن چه که زرری درش نبود. یعنی در اون تقسیم زرری بر طلب کننده نبود. لازم میشه بر دیگری قبول کنه این تقسیم رو اگر چه که برای اون دیگری زرر داشته باشه. برای طلب کننده زرر نداشته باشه. لازم میشه بر دیگری که اجابت بکنند. بله تا اینجای ای کار درس کافی است